بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام ساز استاد نعیمیان اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبی نو عبد القاسم محمد والا اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیۃ الله في الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا خوب یو میکروفون رو بیارم جلوتر بدم جلوتر مو بحثای مختلفی در مورد نظام اندیشه نظام دین نظام دین مداری می توانیم داشته باشیم یک مفهوم مهمی که به نظرم باید در ذهن ما برجسته بشه و بهش عنایت نشان بدیم مفهومی است که پول محور و اون محتوا و زاویه دیدی است که ما از مفهوم نظام می توانیم به دست بیاریم ببینیم در مواجهه با دین ما چه کار کنیم با یک نگاه روش شناسانه ما ضرورت داره به بحث دین شناسی بپردازیم در تحصیل دانش فق در تحصیل دانش تفسیر در دانش اخلاق اسلامی شما وارد میشید باید یک روشی شما داشته باشید. ممکنه بفرماید آقا ما دانشی به عنوان اصول فق داریم بعضی هم پیشنهادشون اینه که اصول فقه رو تأمین بدید بگید اصول استنبات دین اصول استنبات شریعت خیلی خوب اشکال نداره ولی ببینیم چقدر از این دانش شما آورده روشی دارید چقدر آورده ها و دستیافته های غیر روشی دارید که بهره هستند و شما از اونها استفاده میکنید بعد ببینیم در مورد روش یک کار دیگه باید بکنیم می توانیم راه دیگه‌ای رو بپیماییم یا نه محتواهایی رو داریم بعد این محتوای روشی چگونه است چه ویژگی‌هایی داره ما برای فهم ارتقای یافته دین چگونه می توانیم استفاده کنیم چه گزاره ها چه های فکری چه نوع عقلانیتی رو بعد بریم پیدا کنیم در این که دانش اصول فق دانشیست که روش میده ارائه دهنده روش کمک به روشمندی ذهن و انضباط در استنباط میکنه که تردیدی نداریم اما آیا خروجی اصلی اصول فق حتی اگر اون رو تعمیم بدیم بگیم دانش اصول فهم شریعت آیا خروجی از پیش روشه یا چیز دیگه است ممکنه آرای مختلف رو شما دیده باشید بعضی به طور کلی بگن اصول روشه اما یک نگاه دیگه یا میتوانیم مطرح کنیم همین دانش اصول که بخشی از بحث‌های اون هم طبق اختزاعات مبانی و روی کردهای نوین ممکنه بگن که آقا اختزای بیشتری داره بیا بیشتر کار کنیم بعض یا کار کمتر محدودتر بحث کنیم یا اصلا بحث نکنیم یه بخش هم بیشتر بحث کنیم آیا اینها روشه؟ میتوانیم بگیم که نه سقل اصلی خروجی دانش اصول فق ارائه مبانی استنباطه در دل بحثای اصولی روش هم پیدا میکنید خروجی که من اسمون رو گذاشتم مبانی روشسازم هست. تاثیر هم در استنباط روش اتخاذ روش داره. همه شما اصول فقه کندی در سطوح مختلف سطح های تکمیلی تر هم طبیعتا توفیق خواهید داشت که واردش بشید. اما آیا خجیت ظواهر مبناس یا روشه؟ شما بفرمایید. بلند بگید که رفع خستگی شما هم بشه مبناس سایر مباحث در بحث الفاظ آیا این موضوع این مفهوم حجیت داره یا نداره حجیت مفهوم لقب یا عدمش مبناس یا روش مبنا خب پنشیش تا مفهوم دیگه هم داریم مفهوم وصف مبناس یا روش مبنا. مفهوم لقب مفهوم فلان مفهوم فلان همطور برید. خب مباحث الفاظ عمومیت و اطلاع تخصیص و تقیید میگه آقا این شکل از تمسک به عام حجیت نداره این مبناسی روشه روشه اما به شما میدانی برای تعملات بعدی رای میده که شما اگر این مبنا رو قبول کردید برید یه روشی پیدا کنید که این مبنا رو تطویق کنید اگر میگیم تمسط به آم در شبه یا حجت هست یا حجت نیست خب به شما میگیم برو یه روشی پیدا کنید که ببینید اینجا مصداقن اینگونه هست یا نیست اگر اطلاق اینجا اراده نشده میگید این اطلاق نداره یعنی میخواد بگید آقا اینجا اگر هم شما اطلاقی پیدا کنید دست این حجت نداره این همیشه مبنا اما میده سراغ این که میگید آقا آیا قط یقین حجت است یعنی این دست از زنون زنون معتبرن یا معتورن نیستن این شد چی؟ مبنا اما این مبانی که در از اول اصول تا آخر اصول هست و نیازم داریم دفتر دوم اصولیم به تعبیر را جای علی دوست اضافه کنیم موضوعاتی که مورد نیاز است شما اضافه کنید کتاب الفائق هم نوشته شد برای ممهزین در رشته فقر الزامیه غیر ممهزین ضرورت نداره الان طبق مستنبوات جدید حوزه خب اینا تاثیر در چی داره یه سری مباحثی که مکمل جز مباحث اصولی ضروری اما این مبنا میده اما قطعاً شما لا مباحث اصولی بحث روشی هم میتونید پیدا کنید هر کدوم از این مبانی هم میتونه شما رو سوق بده به سمت یک روش اگه مبنا تغییر پیدا کنه ممکنه نمیگم حتما ممکنه روش عوض شه مثلا اگر ما روی کرد نمیگم اله مبنا روی کرد تراکم زنون و تجمع قرائن رو بپذیریم بعضی ها ممکنه میگه نه آخوا این زنون رو بغل دستم هم بذارید این مثل صفت هاییست که هیچ فایده نداره بعضی ها میگه نه اینا بذارید بغل دسته هم تراکم زنون حاصل میشه شما تجمع قرائن کنید تجمع قرائن زنون شما رو متراکم میکنه حتی به اطمینان و قطعا یه جایی ممکنه برسانه مرحوم شیخ یه بحث اینطوری دارن در بحث لابلای بحث هم برید همینطوره اجماع منقول میبین نفیش میکنه اما وقتی بحثش تماشون آخرها میگه که البته ننازدش در حاله به تعبیر من اگر قرائنی جمع بشی ممکنه شما رو نمیگه به زنه ممکنه شما رو به اطمینان برسانه این یعنی چی؟ این یعنی این روی کرد این مبنا اگر بگیم روی کرد به این معناه که خیلی جا ازش استفاده مؤثری ممکن بکنیم در فق یه سبک فقی درست کنه که متفاوت هست مثلا رویکرد استنباتی استنباطی و مکتب و مدرسه فقی مثلا اطلاع خویی رزمان الله تعالی علیه ایشان میگه آقا نه این روایت سندش در این بذارش کنار دنبال تجمیع قرآن نیم تجمیع قرآن یه مقدار که به روش داره نزدیک میشه ولی تجمیع قرآن رو دیدید شما تو فقه تو اصول مفصل بحث کنن نه یه کمی بین مبنا و روش یه روی روشی داره خب بیایم یه قدم جلوتر پس می توانیم حالا ممکنه شما پاسخی هم داشته باشه اشکال نداریم ولی بمیانه احتمال بگیم که دانش اصول تمرکز اصلیش روی ارائه روش نیست روی ار ارائه است. شما اتخاذ مبنامی کنید در فکرش ازش استفادی می کنید اما حداقل اقل زمین ساز بعضی از روش ها هست آیا می توانیم روش های رو پیدا کنیم محور روشناسیه کار بردی رو کجا پیدا کنیم با چه مفهومی دنبال کنیم یکی از اصلی نکات بحث فرایند استنباطه شما میگهد آقا اطلاق این اطلاق حجیت دارد خب ما میخوایم بریم یه اطلاق بدوی داریم میخواییم بریم حالا به بحث نظام میرسم از فقه نگر و اصول فقه نگر. میخواییم شروع کنم به استنباط نظام برسیم ببینیم در موضوع روش استنبات نظام و اینها چه کار خب شما یه فرایندی تیمی کنید در بحث موضوع شناسی ما تفکیکی تفکیه که یه, با یه فرا مراحل کلی در نظر گرفتیم و بعد در هر کدام یه گام هایی حالا بزرگوار بار دیگه ممکنه گام ها و مراحل دیگه اتخاذ کنن یه مرحله اول مرحله موضوع شناسی و گام های اونه موضوع یعنی چی موضوع شناسی دو سه معنا داره یکی تعریف موضوع یکی تطبیق موضوع یکی هم شناسایی مصادیق خاص در عالم جدید و یک موضوع شناسی معاصر در موضوعات نوین. اون موضوع شناسی که گفتیم تعریف کارش تعریفه یعنی چی؟ یعنی شما خواهید برید شریعت در مورد جهاد چه تعریفی داره در مورد به چه تعریفی داره الان شما مکاسب خواندید، چلومه خاندید من از شما می‌پرسم روش استنباط شهیدین در مورد استنباط و رسیدن به یک تعریف چیه؟ اینجا یعنی چی؟ یعنی حداقل باید فرایند ذهنی اون بزرگوار رو پیدا کنید. ممکنه لابلای کتابش صد تا مفهوم رو تعریف کرده، فقط تعریف کرده. شما باید اس اشارات جمع میکنید میفهمید که فرایند ذهنی چی بود این برای شما مهمه حالا چون شعر لومون مختصره انتظاری که از جواهر و مکاسب و کتابهای معاصر میره بیشتره شما ببینید ببینید فرایند استنباط یک تعریف از نصوص شعر چیه در موضوعات منصوص موضوعاتی که منصوص به معنای اینکه در کتاب و سنت آمده ببینید مر... گامها چیه؟ بعضی گام ها پژوهشی ما جلو بحثش می یه جایی هم بعد مثلا یکی از گام های اساسی عناصر شماریه اناصر شماری شرعی، ناصر شماری عرفی اسصر شماری لغوی ببینیم تو لغت اونصر اصلی در این مفهوم چیه عناصر فرش چیه یه مثال بزنم میخوام به جای دیگم گراهی بخورید مثلا در این کتاب های مقام از رهبری. یکی از این کتاب های تفسیریشون شاید تفسیر سوره برای این وسط هاش جالبیه شاید تفسیر آیه 62 یا 32 بود شاید 62 72 دوش بیادمه مفهوم جهاد رو تفسیر میفرمایند همین اناسر شماروی میکنند با چیز زاویهی دیدی؟ میگن آقا این آیش این مثلاق از آیش شریف جهاد به منعه جهاد آیا فیزیکی و شمشیر و ایناس یا وعنی آمه میگه جاهد کفار ولی منافقین آیا ما در سیره دیدیم پیانبر با منافقین به جنگ نه نیستش اگه آیاته دیگه نگاه خیلی راحت میگه آم مبارزه کنید دوباره شمشیر بکنید اما با منافقین شمشیر کشتن بله بحث مسجد زرار هست این اقبال خودمها رو میگن چبایدی میارن عناصر شماری میکنن میگن نه این که خلاصی مبارزه نظامی بکنیم تو مفهومش نیست به چه مفهومی میرسن به این مفهوم میرسن که این مقابله و مقابله اولا مقاومت مقابلت بکار بیاند جلوتر که میرن میگن مفهوم مب... تقابل هست، توش مقابله الان این یه سبکیه خب حال ما بریم سراغ لغت بریم اول بریم لغت دوان بریم اوف بلعرض نسبت روشی اینه بحثای روشی دیگه است قرآن چگونه استفاده کنیم قرآن مرگوب مفهوم شناسی همطور موضوع... تطویق موضوعات چگونه یه موضوع شناسی دیگه شد شد به معنای مستاخ شناسی میایم بحث فهم موضوعات رمز عرض ها چیست اونجا ما از الفاظ مرس میشهم اناوین موضوعی شروع میکنیم عنوان در کتاب سنت آمده نه در کتاب سنت نه آمده در کتاب تاریخ و تفسیر و شعر قدیم بوده ولی در قرآن نیست از الفاظ شروع میکنیم بعد میگیم ما مفهومش چیه اناسه شو هم دو گام های جلو اما رمز از که در کتاب سنت نیست ما بعد از کجا شروع کنیم از تو اونجا واقع شناسی یه مقدار متأخره اینجا واقع شناسی بیرون با کلمش کار نداریم اول اصلا ببینیم واقعیتش چیه بعد نگاه میکنیم ببینیم اسمش چطوریه اسم شناسی هم بعدن ببینیم این جامعه به چه عنوان نه مثالی بزنم میخوام مفهوم روش روشن رو بشه توی این موضوع شناسی شما لباس سطلی رو که آشنایی تو. یه جایی لباس شویه سطلی استفاده دیگه پیدا میکنه به حدی که اسمش هم توی بعضی مناطق عوض میکنن چی میگن؟ دوستان بفرماین اسمش هم عوض میکنن بیشت میگن آقا کرگیر خب ممکنه مثل کرگیر رو اینام جدا درست کنن اما بعضی جای همین رو اینقدر میان استفاده جدید میکنن اسمش رو عوض میکنن پس شما بعد اول برید ببینی کار کردش چیه عمل کردش و فایدش و استفادش چیه ویژگیاش چیه خب حالا برای رفع خستگی میگم بریت حالا سراخت چیز دیگه بگید آخو خب ما بافور رو میاریم یه کاربورد دیگه بهش میدیم خلاصه اسمش هم عوض می‌کنیم. نه دیگه دست من و شما تصنعی کمی نیست خب برای خست، رفع خست. پس ببین اینجا من چه کار کردم یه مراحلی رو فرایندی رو برای شناخت موضوع تقیمی کنم میرم ببینم واقعیتش چیه کاروردش چیه بعد میام ببینم چند نوع جای مختلف های استفادش واحد، واحد نیست بعد میام آخر کار میام سراغ اسمش پس بگیه فرایند تو روش شناسی روش البته مفهوم روش شناسی گوه یه قد کلاسش بالاتره یه موقع میاییم اقوال مختلف در مورد روش استنباد رو بحث میکنیم میاییم روش هر کدوم از علوم رو با نگاه مقایسه اقوال بررسی میکنیم سطح کارش میره بالتر اسمش بیزاییم روش شناسی یه موقع میگیم آقا روش درست چیه؟ دنباله نسیم اقوال چیه؟ میگیم روش استنباد خب اینجا شما در موضوع شناسی مثال من زدم میخواد شما حکم تکلیفی رو کنید میخواد حکم وضعی رو کنید باید بیه فراینده شما این چه فراینده قدم اول چی؟ قدم دوم چه قدم سوم؟ ممکنه فقیه همه رو خیلی سری همه رو انجام بده تو زینش ولی شما ده سال درس خارج برید استاد به شما سریع نگه ممکنه گم بشید دستتون نیا بلکه یه جایی ممکنه خود استادم هر سری یه مسیر رو بره در دو تا مسئله مشابه کاملا مشابه دو تا مسیر رو بره ولی اگر خداگاهی تقریت بشه شما چیکار کار میکنید در استنباط احکام تکلیفی در استنباط احکام وضعی من در مساحبه های علمی دوستان طلاب معمولا این رو میپرسم بگه شما مکاسب خاندید در مکاسب چه احکامی بیشتر شیخ احکام تکلیفی و از میان احکام تکلیفی کدومش بیشتر محل توجه مثلا فرض کنیم بگیم آقا با مباح هست یا حرام است این بی نمیکنه واجبه خب این این همه مثال دیدید این همه غنا و رشبه و فلان و فلان چند تا مفهوم داره تو مکاسب روش استنبات شیخ برای تعاریف موضوع شدنست یعنی کشف تعریف شرعی روش شیخ چیه؟ الان دیدید استادی بیا برای شما بگید خودشون حساس شدید از این ما حساس بشید برید مفاهیم جدا جدا بیایید تجمیل کنید مقایسه کنید ببینید روش و گامهاش و فراهندش چیه؟ کشف خود و حکم سودور بحث بحثت و سودوری. اول ما چه کار بکنیم؟ سنت قدم منول چه کار؟ قدم دوم چه کار؟ این میشه فرایند، مراحل، این میشه روش آیا محدود به بحث فراینده؟ نه؟ میشه ما تو بحث روش شناسی و روش استنبال فنونی رو هم بیاریم فنون یه... خب این فرایند رو کجا کدام کتاب رو پیدا کنیم؟ یه تیکاش تو اصول هست من رو به شهیستد آمد یک کمی برایست فراینده کلی استنباد سیر و اصول فقه و حلقات رو ترتیب داد خب یه قدم آمد جلو یه سری بحث تو کتاب اصولی اما اگه خاصی این کارو بکنید باید به تو دل کتابای فقهی مثال زیادی 500 صفحه بخونید هر کسی بری پایان اینجوری بنویسه یه مقاله بنویسه بگی آقا جلد 1 جواهر من علاقه به عبادات دارم برم در ببینم روش استنباد موضوع موضوعات عبادی رو مرحوم صاحب جواهر چیکار کرده احکام وضعی چگونه احکام تکلیفی چگونه بحث صدوری چگونه بحث سندقی فرایندشی خب یکی مسئله دوباره فنونش، فنون استنبال در هر کدام از اینا تو هر کدام از اون گام ها فرا... مراهل از اون استفاده می کنیم مطبط در بیارید به خرج بدید اساتید پجوهشگران فکر نکنید یک استاد حتماً یه چیزی در میاره شما نمیتونید مراجعه موتون بکنید یه تلاش علمیه خدا خدا توفیقاتی به شما میده بعد میرید با استادم بحث میکنید در فرایند سالهای آینده خب حالا برگردم این شد در ساحت فقه معمولی هر کدوم از این گام های میشه من روی نمیخوام الان خیلی وایستم میخوام در چارچوب بحثم اما باید مفهوم روش معلوم بشه روش توش فرایند هست توش فنون ممکنه باشه یه سری کارهای دیگه هم ممکنه شما داشته باشید مثلا یکی از فنون آم شما یه جایی مفهوم الگوریتم رو شنیدید مفهوم الگوریتم یک مفهوم ریاضی است در فضای ریاضی در دوران صده های قبل ما تو فضای ما بود بعد این مفهوم به فضای اروپا هم رفت خب در مفاهیم ریاضی و فیزایی کوئی نام هست الگوریتم یعنی چی؟ یعنی شما یه مسیر دارید میرید تو مباحث مثلا فرقی بگیم میگه اگر این گونه بود شما این مسیر رو برو اگر این گونه بود اون مسیر این چارت های تشکیلاتی رو که شما دیدید یکی از کار ضروری برای طلب ها کار تج... تشکیلاتیه تقسیم کاره اصلا جامعه بدون تقسیم کار شکل نمیگیره بدون نهاد سازی که جزو بحثه بعدی ماست شکل نمیگیره شما یاد بگیرید چگونه تشکیلات بسازید یاد بگیرید مفواهمی که بعدا میخواهم استفاده کنم فرایند کار رو تعریف کنید اولین کار دومین کار سومین کار عناصر ثابت و متغیر رو باید در کار خودتون تر مرتب کنید خب آقا میایم مفهوم الگوریتم اینجوری کمک میکنه میگی آقا اگر رفتیم جلو اینجا اگر این دلیل کفایت کرد خب بهش تمسک می‌گیریم دیگه سراغ اصل عملی نمی‌ریم اگر نبود می‌ریم سراغ اصل عملی این شد الگوریتم این یکی از اون فنون عام اگر اگرها رو ما خب الان تا الان داخل پرانتز عرض کنم یه مقداری نهزت جدیدی برای روش استنبات در فقه کار شده ولی منابع اصلی کجاست همین کتابای سنتی فقه منطور بعد کسایی برند در حد مقاله هر کسی ذوق خودش لومه میخواید لومه رو کار کنید مکاسب میخواد بین روش مکاسب چیه؟ اساتیت محققین بعضی بزرگ باران تعلیفاتی دارن که نیاز به بحث معرفی جداست. خب نظام اینجا با بحث ما گره خورده ما اینجا دو تا مفهوم از نظام می توانیم داشته باشیم یه موقع میگیم نظام شناسی می کنیم یعنی چی میگیم مکتب شناسی می کنیم میگیم عقلانیت شناسی می کنیم هر تعبیر دیگه به چه معنا یعنی می خوایم کار ما دین شناسیه می‌خو مستاق مستاق نگاه میکنید می‌دید که حکم الله در این مسئله این است پنج صفحه می‌دید میبینید مثلا شرح اوربه مرحوم شعیصد بحث کرده مرحوم سا... هر کدام از ها مرحوم حکیم در مستنسک بحث کرده یک تک مسئله حکمشو گفته مسئله بعدی مسئله بعدی مسئله بعدی تفاوت این مسائل به چی قید و قیودش عوض شده مباه مسائل یک باب تمام میشه میرید باب بعدی سوم بودید میرید باب بعدی کتاب بعدی خب این های های جدا جدا یه ربطهایی داره شما یه موقع میگید آقا من میخوام نظام معنویت در اسلام رو کشف کنم خب معنویت کجاست؟ تو سلاته؟ این اوجشه بله ولی تو وقف هستا نیت واقفه که آدم میبره بالا واقف رو میبره بالا میریم در جهاد میبینیم ای عجب اینجا هم نیت مجاهد شرطه بعد با یه نگاه عام میشون نگاه میکنید میبینید خب آقای اینجا ما باید یه استنبات عام می پیدا کنیم یه روشی میخواه اون روش های خورده ریز که داشتیم که بعد منضبط تر بشه که اگه منضبط نشه استاد ارائه نده شما ده سال میرید درس خارج بعد ممکن است شما بپرسن که ما در صابق میپرسم. مین نه مقاب خوانده میپرسم آقا روش تعریف مفاعین ترس شش جای دستش روش تعریف حکم و این جایه یا جاذ نیست، جایز به معوع تکنفی جایز مع حکمهوضع این. یا شما میریید مثلا، شرایط صحت سالات رو میخونید خب شرایط صحت سالات چند تاست این تعداد 1 2 3 4 5 شرطیت یک مفهوم چیه یک حکم تکلیفیه یا وضعی وضعیه پس شما باید بدانید به احکام وضعی رو چگونه استنباط کنید روش و مراحل و فرایند مشترکش رو همه جا بیارید مثلا من اینجا میگم شبه اولین روش بهترین روش این که اول به تصریحات مراجعه کنید روایات و آیات سریح رو پیدا کنید بگه آقا این خاضا خب اگه شرط نبود تصریح نبود چی؟ روش دوم روش دوم چیه؟ تو اصول چی میگه؟ میگه اگر این مثلا ظاهر بود حجت است یا نیست دیگه نمیگه اول کدام دوم دو کدام با این بیان روشی اولویت گذاری میکنیم میگیم اونی که تصریح کرده به شرطیت تصریح کرده به این که این جز جز واجبات سلاته تصریح کرده که این رکنه اون یکی نیست شما تمثل کنیم بهترین این روش روش عام دوم هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی میکنم آقا تصریف پیدا نکنیم یا هست میخوام دنبال دلیل دوبام بگنیم به چی دمست کنیم کنار غیر از نوز تصریفات به چی بگیم به چی ظواهر؟ اینم راه دوبام خب زواهر انواع اقسام داره متناسب با هر حکم اگر واجب باید سیغه های تعبیری سریح رو دستبنده کنیم برای هر حکمی مثلا میخوایم خوام بگیم هاذا واجبون چند تا تعبیری سریع داریم هاذا واجبون دیگه چی سریع مثلا فلیذتُن من الله پس صيغه تعبیری مربوط به هر هاذا حرامون برای حرام ببینید صيغه ها خب برای زواهرم هم کنیم برای هر حکمی یه مرحله دیگه احکام لوا تمثل به لوازم از اینو بعد تو مرحله بعدم میخوام اینجا میگم تو بعدی هم میخوام استفاده کنم اما نگه دقا بحث نظام نشد بحثایی که اونجاست شما میخواید بگید یک چیزی مثلا سلات باطل است. از کجا میفهمید یه روایت میگه حاضر باطل هم حالا این یه دلیل یا اصلا داریمش یا نداریم از ظواهر میخواد استفاده این راه دوم یکی هم توسط به لوازم یکی از لوازم رو بگید. چیه میگه چی وجوب اعاده اصلا وجوب اعاده نگو فرحه باطلون از وجوب اعاده چی میفهمید بطلان میفهمید خب یکی دیگه میگه یه حرف دیگه میزنیم میگه اقا از وجوب اعاده من یه چیز دیگه مثلا میفهمم شرطیت میفهمم خب بگیم باشه پس مثلا یکی از چیز مهم فقره همی شرطیت ها شرط ها پس باید این مدلی تو اصول نبود تکه تکه پراکنده هست دا. تو فقرم پراکنده باید شما مثلا اگر استاد زابط من دید بیا یک سال با شما روزانه اینجوری کار کنه شما بعد که ملا میشید اصلا میشید ده سال کاری که ممکنه برید این درس، این درس، ولی این روش ها چرا چون این اقتصای هر درسم هست اقتصای این درسم با احکام وضعی هیچ کار نداره ده سال میرید. دی یادت میگه کردن باعث کنید یا خود استاد روشو به کار میبره ما سریش نمیکنه خب اینا رو میخوام برگردونم تو اون بحثه نظام نظام چیه یه نگاه کلی کل لو دوستانم دیدم از اون موقع من دیگه ال مشغول کارهای دیگه بودم مثلا میفهمودن آقا استنباط کل نظام یه کلی است که اجزایی داره اینجا کمی اون سلات به ددمون میخوره اگر میخواید نظام معنوی اسلام رو کشف کنید اگر میخواید نظام سیاسی استنبا... کشف بکنید اگر میخواید نظام تربیتی رو کشف بکنید مؤلفه های نظام چیه؟ یکیش هدفه ببین فقه خرد میگه آقا سر جاش کار درستیه میگه آقا نماز برو بخون خب کار نداره هدف چیه؟ هدفم این بحث مقاصد یه بس لب مرزیه جای نقد داره بعضی بزرگواران یه جوری ترمی ممکن آدم رو سوق بدن به عالم اهل سنت چرا؟ اونجا ما باید اهل سنت بشناسیم اهل سنت روایت رو خیلی محدوده روایت ما خیلی بسیه تو استنباط احکام اونا در به در باید این طرف این طرف بدون تا کمبوده رو رفت کنن قیاس چرا درست شده؟ باید الان صحیح, بخ... صحیح بخاری که بهترین کتاب است نیاز چند روایت داره؟ چارزار روایت داره با انبوهی از روایت اخلاقی، اعتقادی، تاریخی و فقهی کلش میشه چارزار تار روایت شیعه چقدره؟ حتی مجبور کتاب اونو هم بذاریم زیادتر میشه بده دیگه بهترین کتاب اینه دیگه خب اینها کمبود دارن مجبورن تعمیم بدن یکی از رویش ها قیاس تعمیم بده. استقراء استقرام هم یه نوع تعميمه و به قول خودشون آقای کشف العلل و معانی معانی یعنی اینجا چی مخروض شناسی نیست که معانی و علل یعنی همون در راه قیاس یکیش هم کشف یه جایی تازه میخوان ضابطه بندش کنن میگن خب ما بریم اهداف شریعت رو کشف کنیم خب هدف رو شناختیم ولی هدف یه سر بیلسان هم هست دقیق نمیگه میگه عدالت خوبه خب حالا این مساق عدالت نه جوابی میخوام اونجا یه کمبود داره کشف هدف به درد میخوره نمیگیم کلا به درد نمیخوره ولی چقدر به درد میخوره تو استنباط مهمه بعضی از این آگاهان ای، نمیگم همه ها بعضی آگاه نیستن بعضی ها تو میون کتاب ترجمه میکنن دانشگاهی یوهزبی هم تو میاره کتاب مقاصدی آقا ببین اونجا خاصگاش چیه یه موقع این یه هدف فایده مقاصد که اینجا خیلی جای آسیب شناسی داره ببینیم این هدف چقدر کمک میکنه به استنباد فوقش یه جای نفی هم نکنیم در حد مثلا قرینه بودن ولی این باید قرینه کشش داشته باشه هر جا مقصد رو اگر کشف قطی کردیم توسه خیلی مقاصد زنون از این بعضی مقاصد عقلیه زنیه و باید یه تفکیه خب حالا از قایل بگذریم، اگر شما هدف رو بدانی تو مقام اجرام یک کمی گم نمیشید من یه حکمی به شما میگم شما میگم آقا این کارو بکن میگم آقای یه سرباز محترم واسه اینجا سربازی اینجا نگهبانی بده خب من اگه هدف رو نگم قید و های حکمی معلوم نمیشه عمد و قید و قیود نگفتم نگفتم دنبالش یا اونجا نگهبانی بده هدفم چی بود اینجا اگه یکی اومد خاص برای دزدی بکنه جلوشو بگیره میکسر مراقبتیم سیم خارتار کشیدیم، دیوار کشیدیم، دیگه راه دوز هست به این بنده خدا نگفتیم. این نمی‌فهمه، همینجوری هوا نگه نگهبانی. ولی اگه بگیم هدف چی بود؟ در واقع یه قیدی زدیم. خب حالا فوقش در استنباط یه محدود بعضی‌ها پررنگ‌تر شدن بعض وقت. اما در راهنمایی عملی کمک میکنه خب حالا تو نماز بخوان، نمازت اینطوری بود شکسته است، نبود هدف. خیلی جا نیاز نیست. باشه حالا فقی خودش بره ببینه در استنباط به دردش میخوره یا یعنی اون گردن فقی که شما قرار باشید در چقدر با ظرفیت شناسی کنید اما وقتی که ما میخوایم نظام استنباط کنیم رو تک تک حقوق دیگه کار نداریم ما میخوایم ببینیم آقا اسلام دنبال چیه من یه مثال بزنم این مثال من خیلی موقع بزنم مثال جالبیه یه آقایی داریم به اسم ادوارد سعید کتاب مختلفی داره مشهورترین کتاب شرخشناسی مسیحیه ولی نقد شرخشناسی غربی کرده خلاصه حرفش نگاه آقا اینا که آمدن شرق بشناسند خودشون رو خیلی برتر دیدن بلکه وشرق رو تحقیر کردن بلکه برای اینکه خودشون رو ببرن بالا سر این شرقیا ها میزنن شرقی مسلمان و غیر مسلمان و اینا میزنن تا خودشون رو ببرن بالا یه نگاه فرا دارن خب یکی مشهور تا این کتابش کتاب دیگه داره یه کتابی داره خاطراتشه بی کجا بود دیگه آقا ما تو فلسطین بودیم هنوز آواره نشده شده بودن ما رفتیم مدرسه انگلیسی نظام تعلیم و تربیات اینو خیلی خیلی خوش بود نه کتابو رنگی بود نظم خیلی خوش آهان این صندلیو اینجور چیده بشه سر کلاس این طور باشه اون طور باشه خیلی بود. خوش بود. مسائل فلسطین و اسرائیل هست اینا در به در میشه پدرش تاجر بدم میرن مصر. میره دبی میره اونجا مدرسه درس میخونه تو سیستم آمریکایی ببین اون یه فلسفه تعلیم تربیت داره اینا هر دو غربیه اون فلسفه تعلیم تربیتش اون خیلی ریلکس و لیبرال و دختر پسر استخر مختلط تو سر کلاسو بی‌نظم و کتابا رنگی و اصلا کلا که تحلیم تحلیم فرق میکنه این شد دو نظام دازه بچه اشتراک دارن این ها هر دو لیبرال هست ولی چیه این وجود اشتراک تفاوت دارن ببینید شما در نظام حالا با نظام تحلیم اسلام فرق میکنه دیگه برای شما محرزه در نظام شما باید یه اجزا و کشف کنید تا یه فای... فایدی فایده فایدی داره برای شما نظام فایدهش چیه شاید دوستان دیگه بحث کرده باشن فایدهش اش اینه که می‌ذاره حداقل میگه تو جدی زندگی فهم دین مثلا غم نشه خوشنزدن پیدا کنه تعامل بهتری با شریعت داشته باشه یه موقع شما رساله عمره باز می‌کنید همینجوری مسئله میخوانید الان اینا که ذهنشون بشه دوچاره بی حجابی هستن ها هیچ کدوم شو باشون وارد گفته بشه چرا بعضی‌هاش زمینه باشه نیست با این دختر خانم بیا جا شما الان برید بیا من بشینم برات توضیح بدم منم مجردم به حال اینجوری منظورم نیست یعنی که به حال حرف دین رو بشنبه نمیگم هلا شما خواهشن کمی کتابیه ندید یکی دالا ما خلاصه میخوایم شما رو هدایت کنیم به حال کمی کتابیه منظوره که اندیشه دیدو خب شما این موقع رساله رو برمیداد احکام مربوط به حجاب رو میارید خب هجاب این گونه باید باشه واجب این مقدار رو بپوشانید ده تا مسئله ردیف امکانیت میدید به اینها آیا این قانع میشه؟ نه این یک مشکلات دیگه داره هنوز ارتباط با خدا نگرفته نمیدنه خود دنبال چیه البته فطرتش اینا رو داره ها ما باید تلنگر بزنیم ولی اون تلنگور زدن باید علمی باشه شما باید بگید ببین کتاب یکی از کتاب‌های شهید صدر این گونه است که آمد احکام شرعی همین عبادات رو توضیح بده آمد کار کرد تصویر می‌کنه آقا خدا دنبال چیه خب بعد شما کار کنید بگی آقا خدا هدفش چیه من یه مثال بزنم تعبیر مقاصد رو بکنم هدف همون مقاصد ولی نمیخوام اون تعبیر مقاصد رو به کار برم این مقداری لب مرز تفاوت های اعتقادی و اصولی و روشی رو داشته باشیم این مقداری معنای لغویش و محتوال ممکن مشابه باشه ولی تو دام مقاصد های سنی نیفتیم اونا چون که دستشون کوتاه میخوانی کمی خودشون به دین نگاه دارن بعضی هم نه این بحانه است برای از احکام رو اونا که خیلی روشن فکر زنن یه بعضی ها مقاصد بسندن بعضی ها مقاصد گیرونن بعضی ها مقاصد محورن ردوندی دارن در مجموع ببینه شما میگید خدا دنبال اینه که شما رو رشد بده شما رو اینطوری بکنه به این مقصد برسانه به سعادت برسانه شما آمدید گفتید که خدا دنبال چیه میره تو نظام سیاسی الان در نگاه غربی. خب یه هدفیه میگه آقا اصل بر رقابته اصل بر اینه که هر کسی هر جایی گیر میاره در حکرانی حضبی شما باید برید تو حکومت رو به دست بگید اصل بر که قدرت رو به دست بیارید شما میگید آقا قدرت هدف نهایی نیست وسیله است بعد توضیح بدید خب یه روش استنباد میخواد و سایر اجزای نظام یه باید اونصورش هدفه اگه هدف رو نگید نمیشه نظام رو بگید نظام مثل ساختمان نیست یه نرمه از جنس محتوایی مفهومیه البته ساختمان هم بخوای توصیف بکنید باید بگید هدف چیه شما مثلا یه موقع میرید یه چیز زیبای اینجا درست میکنید اسمشون زید محراب. اگه اون بنده خود که آمده ندانید هدف چیه چرا اینجوریه چرا این ور اون هدف شما که نداره گم میشه ش... یکی میده در کلیسا خب این هدفش نبود قبله حالا برای اینکه شما عبادت کنید اونجا هم امکانه فیزیکی داره ولی میمونه آقا این رو به یه جای دیگه است پس هدفش متفاوته خب هدف رو باید کشف کنید و الا ارتباط بین خدا و خلق رو نمیتوانید ایجاد کنید اما استفادهای بدفهمانه نداشته باشیم که به جای های حکم و خیلی بیش از اندازه مالو من این روشه. اون های قبلی که گفتم باید دقیقاً اینجا رعایت بشه. اگر هدف قرینیت داره بعد بگیم هدف منصوصه. منصوص منصوص نیست، قرینیتش نیتش چقدره؟ خب اون حکم خودش لسان داشت، قید و قویدش رو میگفت. هدف رو باشه میگه هدف عدالت است. خب حالا عدالت چه کار کنم؟ بزنم سر این بنده خدا بگم شما خلاف ادالته این قید و میخو اون لسان کشف حکم باید لسان داشته باشه بیان داشته باشه چقدر داره محدودش کنیم زابط من خب اعضای دیگه چیه خود در واقع هر نظامی یه اناساری داره دوسته تا مفهوم که قبلن به کار بردم تفکیخم بکنم نظام شناسی و نظام سازی نظام شناسی ممکنه وضعی این تعبیر رو به کار نبرن مثلا میگن نقا نظام سازی رو مثلا جنوب الله رشاد که ریاست محسن ما رو دارن برای این قسمت نظام سازی ترجیح میدن اناوین دیگه به کار ببرن بگیم الگوپردازی نهاد سازی چرا؟ چونکه مفهوم صبات رو در نظام بیشتر میبینن نظام میگن اونی که میخوایم استنباد کنیم اون کلان اینجا به کار ممکن نهاد نظام سازی بگم بگن این تفاوت مفهومی رو در نظر بگیریم تفاهم داشته باشیم خب یکی از مسائل مهم در نظام عناصر ثابت و عناصر متغیره یعنی چی؟ یعنی شما یه موقع میگیده هیچ انصور در نظام سیاسی هیچ عنصر ثابتی ما نداریم میگیم آقا رأس حکومت میگه نه این ثابت نیست هرد معمولا من میگن که این لیبرال ها و دموکرات ها از فضای غرب میگیرن میارن. میگن نه ما اصلا نظام ثابت نداریم باید بریم سراغ بنای عقلا باید بریم ببینیم پیشرفت جامعه پیشرفت علم ما رو به کجا رسانده خب از این حرفای شعاری زیاد میگن قیافه علمی هم بهش میدن ها. ولی اینا خیلی شعاره تو علوم سیاسی جامعه شناسی در خیلی جا شعار میدن این جا این نکته است که تفکیک که اناثر ثابت و متغیر خب متغیر چرا؟ چون خدای متعال برای زمان و مکان که شریعت رو نازل نفرموده برای همه زمان هاست پس باید متغیرها رو رهبری کنه متغیرها رو سرپرستی کنه متغیرها رو نمیشه رعا کنه نگاه لیبرال البته میگه نه اینا واگذار خب اما نگاه دینی میگه چیه؟ یه سرپرستی کنه، اداره بکنه، جهت بده این مفهوم رو من عرض کردم نتیجه روشیش چیه؟ شما باید برید روشی برای تفکیک اناسر ثابت متغیر رو پیدا کنید مرحوم شهید سطر یه بحثی دارن مثالهای رو میزنن بگن یعنی آیا احکامی که پیام بر فرموده؟ آیا همش احکام اللهه؟ یا احکام ولای متغیر هم داره البته داخل پرمتز میدانیم بعضی از جعل احکام با اجازه خدا به عنوان احکام ثابت توسط پیانبر هم هست با تصمیم بینی جز احکام الله احکام الله که خدا جعل فرموده احکام الله ثابتی که پیامبر جعل فرموده اونو ملحق به اون اول میکنیم منظور احکام متغیر ولایه شایستر تاکید دارن که آقا بیایم. تفکیر کنیم بعضی از احکام ممکن متغیر باشه بعضی... امروز بیشتر بهش میگیم قوانین متغیر البته بعضی هم میگن احکام ثابت احکام متغیر من این رو نمیپسندم مفهومن درسته هم ولی اون احکام متغیر میشه قوانین جلی که حاکمیت حق داره جلب کنه این اگر بگیم احکام الله ثابت است یا متغیر خود بدفهمی درسته همه احکام الله ثابته چه احکام الله اولی چه احکام الله سانبی اینا در ظرف خودشون ثابتن به تعبیر اصول فقی که محوم نایلی بر جسد فرمودن جل احکام به نفع قضایی حقیقی است بله موضوع مصدق عوض میشه این حکم سر جای خودش هست اونم هست یه موقع مصدق از زیر مجموعی میره زیر مجموع اون این حکم تغییر نکرد پس ما باید چه کار کنیم روش داشته باشیم برای تفکیک انا احکام ثابت احکام متغیر آیا رئیس جامعه هر کسی میتوانه باشه که مثلا ما اینو متغیر حساب کنیم اندیشه بلاد میگه نه آقا این منصوب فقیه که منصوب حالا اگر یه جایی نشد فقیه نداشتیم مانع داشت یه مرحله مخصوصان طبق بیان حسبه میگه مرحله بعد عدول مؤمنین همینطور میاد پایین خب میریم نظام قضایی نظام تعلیم و تربیت همه، هر کدوم از نظام ها این طبقه اول ما تقریر که جناب استاد رشاد دارن نظامات رو با تقسیم روایی بر اساس معامله با خلق با خدا با خود با غیر اینا تفکیف فرمودن دانش های برای این اساس یا تره پیشنادی برای تفکیک که دانش های فقهی. بعضی بخش های فقر مضاف، های های جدید به درد معامله با طبیعت میخوره به درد معامله با دیگران میخوره خب این رو تفکیه کنیم و انواع دستبندی ها خب اینجا هر کدوم این قصد رو میریم میخوایم نظام قضایی رو به اون یه بخش از فق انتظام کنیم آیا فقط از فقه نه از اخلاق از بابرها از اعتقال از همینو باید استفاده کنید روش میخواه پس اجزا یه سری اجزا ثابت یه سری اجزا متغیر خب مثلا شما در سلات اجزا رو کشف می کنید حالا اینجا نیازیم هم داریم پس یه روشی ما میخواهیم بلکه مجموعه روش هایی برای شناخت اجزا قدم بعدی برای حیط تعلی بعد میرم سراغ اجزا چی یاد؟ اجزا یعنی آم میگم یک خود اهداف رکن و مؤلفه و عنصر اصلی یک نظامه شروع هم از اینجاست یا قبلش ممکنه مبانی بگیم مبانی جزء یک نظامه تو نظام استنباطی مبانی اون تو ست بندی داره بعضی مبانی عام مشترک با بعید که برای همه خدا وجود دارد پیامبر اینگونه است. این مبانی عام مشترک برای همه نظام های اسلامی میایم می یه قدم جلوتر مبانی قریب برای اون موضوع مبانی مباشرخ از قریب هم یکمی نزدیکتر. متناسب با نظام تعلیم تربیت شما این مبانی قریب میخواید اگه بردین تو نظام سیاسی مبانی قریبش متفاوته مبانی مباشرش متفاوته وقتی رفتید نظام اقتصادی شون مثال بذارید دوستان خسته نشد الان بحث مبانی قریب نظام اقتصادی رو باید بیاد تناسب با اقتصاد باید داشته باشه محتواش رنگ اقتصادی داشته باشه اگر هم عنوان مشترک بود مثلا گفتیم ادالت بعد بگیم ادالت اقتصادی اگر رفتیم تو نظام سیاسی باید بگیم مثلا عدالت سیاسی مثلا پس مبانی رو به اقتضای هر هیتی باید تعریف کنیم خب این مبانی است مبانی ویژگیش چیه اینکه گزاره و قضیه هفت نماز باید و نباید نیست توصیفه هر جا گفتیم مبانی مبانی توصیفیه میگیم که عدالت مثلا خوب است انسان مبانی انسان شناسانه انسان این گونه است انسان مثلا لجباز است انسان لجوج است یه جال یه دو بگم حبز رو که می‌شناسید کجا میشناسید، خب حالا بعد فرض کنیم میشناسید. به رافی سوف سیاسی غرب در چه مقطعی به سیستت سال پیش در جنگ های مذهبی که اروپا بود یه رنگ خشنی با رنگ دینی جنگ ها و بیس سال جنگ‌های های بیس ساله بیس و سال مثلا مفصل با هم می جنگیدن خسته شدن و فضای دیگه این آقای حافز تو این فضا آمد نظر پردازه سیاسی کرد انسانشناسیش انسان شناسی سیاسیش چیه میگه انسان‌ها گرگ انسانهان این مبنه است بعدا یه توصیه روشی میکنه با اون توصیه ها میگیم مثلا اصول اصول باید و نباید متاسفانه این فیلم حضرت عبدالعظیم رو این بعضی از این فیلم های جالبه که میبینید با این نگاه هم نگاه کنید یا آقای میرباقری ساختند دیگه درسته این جمله که مال حابزه انسان شناسیش خیلی خشنه این رو تو دیالوگ حضرت عبدالعظیم بله در جامعه که انسان ها گرگ انسان ها این مبناه دیگرانه مال ما نیست بله ما هم بگیم انسان ها به بدی دارن میل به خوبی دارن خب مبنای مسیحی چیه ابتلا به گناه نخستین از حضرت آدم میگن این به ارث به بعدی رسیده پایه این شرور بودن ذاتی انسان خب ما این مبناه قبول نداریم تو چیدن های بعدی تفاوت میکنم پس مبانی سنخ هست شناسانه دارن تو هر حیطه. مبانی انسان شناسانه مبانی آقایت شناسانه آقایت ما چیست؟ هدف گذاری چیز روش میخوایه نمیخوایه توصیف دیگه خب اون گسول فکری گفتم باید کمی آمتر بعضی ها مطرح میکنم خوبم از آن ببینیم روش توصیف گذاره های هست شناسانه که استوشون میزنیم مبانی مبانی راه و راه شناسانه مبانی روانشناسی مبانی طلام برای هر حیطه ای بعضیش مشترک و عام برای همه نظام بعضیشون خاصه. روش میخوای یا نه؟ ما باید ببینیم این گزاره استنباط کنیم این گونه هست یعنی. انسان این گونه هست یا نیست. تو روانشناسی روانشناسی کارکردگرایانه، روانشناسی ساختارگرایانه، روانشناسی فرویدی اینا هر کدوم یه مثلا روانشناسی فرویدی آدم رو چگونه تصویر می‌کنه؟ با نگاه شهوی تصویر میکنه به صورت افرادی یعنی اون توصیفه شما روش استنباد این تیپ گزارار داشته بشه این یه فقره روش کشف اهداف اهدافم یه نوع هست سالی سنخش متفاوته میبایم حلقه حلقات دیگه اون اصول ثابت احکام ثابتی که گفتم احکام جنسش باید نبایدیه احکام وضعی هم حالا مکمله به یه نوعی شما روش سنبا اینو این رو داشته باشید خب تو بحثه نظام شناسی و نظام سازی اناسار دیگه میگه من آرام آرام جمع کنم حالا دوستان هم تر سوال بکنم یک طرف نشه دوستان هسته نشن یه سلوات یا محرمت بفرماید عناصر اصلی عناصر طبعی بحثو مثل نماز چطور بعضیش رکنه بعضیش غیر رکنه. واجبه ولی غیر رکنه تو هر کدام از این نظاما باید اینا رو داشته باشیم نظام قضایی بگیم کدام اساسیه آیا مثلا قاضی باید حتما مشتاهد باشه خب اینا تو بحث فقیه هم بودا ولی بعضی موقع تو هر کدوم از این بحثای فقیه هم زیاده اینایی که خیلی مهمتره حالت قانون اساسی داره اینایی که برجسته تره ممکنه ما تفکیک کنیم بیایم اینا رو برجسته کنیم اون خورده رضا برای رساله عملی اون قسمت مناسب باشه ولی اون اصلی‌ها رو بیا تفکیک کنیم تا ما به یه نظام برسیم ببینید الان خیلی از آدمایی که غربی هستن مسلمان نیستن از ما گویا زمینه اقبال به اسلامشون بیشتره ولی اگر ما یه بسته معرفتی نظام نظاممند به اونها راحتتر میان خدا رحمت کنه، این خانم شهیدی که ژاپنی بوده امثال اینا کم نبودن، حالشان یه ویژگی خاصی هم داره مادر شهیده، قبل از انقلاب اومده اینجا خب، تربیتی کرده، فرزندی رو رفته در سال 62، 61، 63 اون زمان ها شهید شده، خب، این تیب آدم چکونه میان مسلمان میشن؟ بعض در اون دورایی که کتابم کمتر بود، کتاب مرد. به سختی، حالا اون فطزت پاکشون کمک میکنه اما اگه بشه خود شما کمک کنید باید یه بستی معرفتی دارشت میشین رساله عملی کار کرده خودش رو داره اما چی شما باید معرفت بدید شهید صدر آمدن یه مقرد روش شناسی عام برای استنبات نظریه اقتصادی نظریه اقتصادی عام برای مک... کشف مکتب اقتصادی ارائه کردن که به بحث ما نزدیکه اگه نگیم همونه خب اما روش شناسی و تکمیل بشه دوستان اینا رو یاد بگیرن شما میخواید به جامعه الان مردم رو انس بدید به دین میخواید مردم رو مطمئن کنید بلکه بالاتر قرار ما کمک بکنیم جامعه هدایت بشه باید ببینیم ر... از اون عناصر میخوام بگم رویه های عام و خاصی که برای مثلا نظام تعلیم تربیتی فراینده تحلیل تربیت چگونه باید باشه؟ یه دو فقه و تربیه بخوانن یه دو فقه اخلاق بخوانن الان گیرایش های و صوفیانه ما در کل جهان داریم آیا نیاز داریم با نگاه فقهی با نگاه شرعی منذبه فراینده تربیت انسان رو تحلیل کنیم خب میریه ذکر میگه, میگه آقا 100000 بار مثلا این ذکر رو بگو. آیا مستند به شهر میتونه باشه، نباشه، استنبات شهریه این الان فرآینده. اول این کار رو کن دوم این کار. چون برعکس نه. می‌خوام بریم در نظام جنگاوری. اول این کار رو کن دوم کار. آقا دیگه خب چطوری؟ اینا نگاه کن ببین چه نه. باید ببینیم مثلا خودش میگه آقا اول مر دعوت کن. مثلا در جنگ با کفار، فلان. یه فرآیندی. فرایند یعنی چی؟ شما تو نگاه قبلی تک تک جدا جدا مسئله بینید. اما آیا واقعا شر فقط همه مسئله جدا جدا میخوابی شما بده یا اینا ترکیب داره میگید با ست تا فعل داریم فقه و شریعت قراره به من بگه چی کار کنم خب آقای مسئله یک به من گفت این کار بکن. اونجا هم گفت این کار بکن. خب بایه هیچ ترتیبی نداریم فرایند نداره فرایند بخش ثابت و بخشیش بخشی متغیری به اختصار زمان نکن اون فرایند ثابته اگر هست من باید استنباط کنم منظومه هایی که توی نظام قرار نقشافرین باشن آیا من تکم شما تکی آیا احکام کاملا منحل میشه مثل سلات من نماز میخونم شما نماز بخوام. اون یکی اگه نخوان به جایی بر نماز ما باطل نه بعضی جا ببینید الان کار جمعی شما میخواد بکنید اگر یه نفر یه کار نکن کل کارهای دیگران باطل بیفایده میشه پس این نظام ارتباطت در هر بخش رو ما جدا در بیریم ببیشه با نگاه ثابت متغیر نگاه رکن و غیر رک کدام اصلیه کدام تبعیه، کدام ضروریه بعضش مقدمه سر کارای کارهای بعدی ما گایی خود میریم ظلم و قدمه رو میشستیم مقدم رو رها میکنیم اگه این مقدمه بود نه من آقا میخوام این انجام بدم خب اصلا اون مقدمه وجودیه اگه انجام ندی اصلا این مقدمه این ظلم مقدس شکل نمی میگه من وظیفه‌مینه الان استطاعت ندارم میگه خب یه قدم برو جلوتر استطاعت رو بس کو پس ببینید ارتباط احکام رو باید ببینیم تو هر عیده این روش میخواد نمیخوا اینجا چون که مساله از سنخ ارض مثلا فرآینده من باید کشف بکنم می یه جا میخوایم طبقه بندی بکنیم مثلا بحث تضاح ما اینو ارزان بگم و دیگه برگ بزرگ بارگگه فرماش دارن یه کمی زودتر ما تعطیل کنیم دوستان حرم هم اگه بخوایم برسن به هرات زودتر برسن فرصتی باشه حالا اگر دست جمعی تشریف برای برات خوبه حالا برگشت حداقل با هم باشید یا هر سب که بخواید. خب خدمت شماوض کنم شما میخواد. رفع تضاهن بکنید اگر خواستید مرجع تقلید بشید این شهالا خدا یا دوستان ما رو همه رو در سلک مراجع تقلید قرار بده خیلی دنیاگرایی، نه دنیا گرایی این الله میخواید وز... انجام وظیفه کنید خدا, را... خدا یا شکر خب اشکال نداره شما بلند ببینید نشدید ولی کاری بکنید که اگه مرجع تقلید نشدید خیلی مفید باشید یه فقیهت متخصص بشید. یک متکلم یک فلسوس هیچ موقع حدر نده خدا یا دوستان را در سلک مراجع تقلید آینده ساز ما قرار بده آمی. خدا شد خدمت شما ارز کنیم ببینید رساله عملی خاصی نیست من یه پیشنهاد دارم اشکالم ندارد، رو هم کپیم هردید اشکالم من پیشنهاد میکنم هر قسمت هر باب رو بیادید تزاهم های اون باب رو بنویسید اگر بحث سلاته، بگید باشه اگر یکی آمد پول خواست همونجا پول رو بده اولین کار بکن و ب. کدام او داره؟ فقط مثال خ رو خوشم دیگه نزنید. من این بحث مسلححت و تظام رو معمولا صنعات خیلی قبل این بحث فقول مثلاش کار میکنم با دوستان کلاس و برنامه خیلی جا حالت کارگاهی می این رو یه دسته اینجا مثال بزنید. شما الان بگید اینجا چه بابیه؟ چندتا مثال دارید؟ اونجا چندتا خیلی زیاد میشه. حالا بیا تو نظام اجتماعی تو هر کدام از اون نظام ها. شما آمدید اهداف رو کشف کردید اهداف تبقیبندی رو ما حد بکنید مثلا الان هدف نهایی در اقتصاد اسلامی چیه؟ چیه؟ خب مثلا هلان بیان هدف نهایی در نظام سیاسی چیه؟ خب باید این کنید خب اهداف میانه چی؟ یه روایت جالبی است که به خیلی از عباق میخوره یه سلاست و اشیاء و یحتاج و و تورن الیه ها الامن و العدل و الخسب یا ولخست یا ولخست امنی... الامن و العدل و الخسب امنیت، عدالت آبادانی حالا با معنای عام مفروب امنیت اقتصادی میخوایم تو نظام اقتصادی، امنیت تعلیم. در تعلیم و تربیت می‌خوایم بچه، امنیت، احساس امنیت بکنین. قدیما بچه ها رو می‌زدن. خب این رو یه موقع یه مسئله جزئی، مو مطلب می‌کنید، فهمیده این نظام در بریم پس تمام اینها یه فرایندی می‌خوام. اون روش‌هایی که من عرض کردم برای حکم تکلیفی، حکم وضعی. خب بعضی از اون روش‌ها اینجا مثلا می‌گیم آقا اهداف رو می‌خوایم کنیم، تمسک تسریح. این رو کسی معمولا نمی اینجور دستبندی کنن الان که من به این روایت به چه نحو بود اهداف رو ما اینجا کشف کردیم درسته؟ این تمسک به تصریح بود یا تم... یعنی مفهول نظام زازی است چرا؟ چونکه اناسر رو من دارم در میارم از این روایت سه مورد رو داره میگه اینجا الان من تمسک به تصریح کردم یا به روش های دیگه بفرمایید تصری بود اونجا نگفت سلاست و اهداف گفت سلاست و اشیاء یختاج و ناس و ترن علیه گفت سه تا نیازه خب اگه شما خیلی مفهوم نیاز رو ربطش بدید به هدف یه مقدمه میخوا، یه روشی میخوا پس ببینید شما الان این روایات تیکه که دستبندی میکنه مرحومه اطلاع مشکیمی رحمت الله علی خب یه کتاب اینطوری داشتن روایت رو اینطور بگید آیاتی که دو صفحه قرأه دو صفحه قرأه میاره این نسبت این عناصر جدا جدا رو با هم شما خیلی جا تمسک می‌کنید یا آقا ببین اول آموزش قرآن فر بود بعد بیاد یا بالعکس بینا تمسک خود این روش چرا چون میخواه نظام در بیاره البته هر کس از خودش شما نمی‌خواید بگید که من به جه مرجع تقلیدی که هنوز نشدم قراره بشم به جهون حرف زم. نه در هر کس از خودش ولی تعملات و مطالعات نظام شناسانه یه جدی است. یه خطم ارز کنم ما وارد نظامسازی نشدیم. نظامسازی یه مبانی خودشون میخوا مبانی روش نظامسازی با این کمک میکنه ها. ولی یه مفاهی این یه دیگه ای داره. مبتکی بر اینا. این نظامی که استنباد کردیم باید روش شما بدید برای شیوه پیاده سازیش نهاد سازی مالا رویه گفتم اهداف رو گفتم و دوستان یکی از مسائل مهم نهاد سازیه خود اسلام یه جایی نهاد سازی کرده نهاد یعنی چی؟ مجموعه اناسی رو بقل هم قرار داده یه کاری رو تعریف کرده نهاد داره ببینه آم نظام ساختاری درست کرده این فرد باشه اون باشه این باشه اینا با هم تقسیم کار کرده آیا تقسیم کارها ثابته متغیره تقابل تغییر هست نیست مثلا کن پیامبر فرمانده گذاشته رئیس گذاشته دوازده قسم گدامی ما هم باید حتما اون کاره بکنیم کدامش به اختیزا اون زمانه ببین اینا باید تأملات متناسب با خودش رو داشته باشه از حیث اصول فقهی و حجیتش اون نگاه اصول فقهی رو تحمیم اونم تازه بدیم این کشف اناسر کشف ارتواط نهاد سازی نظام سازی به منای نهاد بیایم فرایم سازی بکنیم بیایم تصمیم سازی بکنیم چون با این نگاه بده تو آلم مدیریت میکنه خواه هدف گذاری بکن اون کشف هدف الهی اون متفاوت بود اهداف ثابت اهدف متخ... متغیر اهداف طبقه بالا طبقه وسط طبقه پایین اهداف میانی متوسط اینجا میگه هدف گذاری بکن هدف گذاری اون اهداف مستنبت رو چگونه بیاین پای هدف گذاری هدف گذاری قریب بعید متوسط زمانیش بکنیم اهداف کوتاه مدت بلند مدت هدف گذاری کارماست متکی بر اون اهداف مستنبت تو هر نظامی راهبرد سازی یه اون لایه مستنبت از ها رو ما کنیم این روش میخواهم تعریف کنیم راهبرد چیه روش اونجایی که می توانیم استنباط کنیم چقدر های متغیر متناسب با زمان مکان رو روش سازی رو کار کنیم منتظر ضابطه دینی نه اینکه کامل بدیم دست آقاین علوم انسانی با نگاه و مبانی غربی ما باید تو اون مراحل مثلا تو این بحث تو تعلیم تربیت راحت میگه آ بچه رو این کارو بکن آزاد بذار خب ببینید اسلام چه میپسنده میپەسنده اینو تو اداره جامعه اداره سیاسی جامعه آقا مردم رو این کار رو بکنید آقای این اب نداری اینم ارز کنم بعدی یه بایین نگاه آسیب شنست آقای مهدی نسیری دیدید الان که اینشون اخمالو میکنه خواهی فرایند داره یه طلبه مثل من و شما بوده در نون جوانیش در 24 سالگی شده رئیس روزنامه کیهان محصه کیهان موازه یه انقلابی و تند پیگیری پیگیر و داشت بعد از اونجا درامت حالی فعالیت های دیگه داشت نشیه داشت بسیجون نقد قرد داشت بعد افتاد در دام مکتب تفکیکی ها یه مقداری بگیم نیمه اخباری بعد آمد نقد ارفان و فلسفه و اینا کارو نداریم این اواخر آمد یه کتابی نوشت اصل حیرت اون نکته اساسی معرفت شناسیش که به دردم اینجا میخوره آسیب شناسی معرفتیه. همه حرفی که دکتر سروش داره روشن افریک بیاده اینا زنیات زن این احکام فقها، ها فقها، های فقه ها بریزشون دور چه جوری بریز دور میگه ما باید سوال ختم بگه شورای فقها ها درست کن بشه اینا نگاه کنن ببینن کدام فتوان کارآمدی بیشتر داره از زن میخواد فرار کنه افراتی زونه معتوه غیره معتوه ببینید اینجا یه نگاهی داره که دنبال ها ها نیست که رها کرده به بهانه اینکه ریشهش ریشش قط بسند شده اخباری هم قط بسند بودن ولی اکثر روایت رو قطی می دانستن این بندی استنبات های فوقان ها رو هم خیلی خراب نمی کردن حالا دبا به اصولی اونسا جای خودش اما این بندی خود قط بسندی رو از اخباریون گرفته ولی میادن تخریب شما میگه آقا هجاب, کن. هجاب رو لش کن خب چرا چون که برچسب میزنه به فتاوای فقاهی استنباط استنباط زنی معتبر پس ببینید تاثیرات عملی داره خب اگر بزرگباران فرمایشی دارند بفرمایید بفرمایید فرمایش عامی تا یه هم دوستان خانم‌ها اماده بشن خستگیشون رفت بشه ان بهره ببریم اگر فرماشته یکی دو تا سوال عام بپرسید بعدش دیگه خواهید چون ممکنه ز ولاسدستان نخسته بشن همه بخوان مشترک بفرمایید بله اینجوری که من عرض کردم این روش شناسی استم اینا هم استنباطات مونتا قبلا ما مسئله خرد خرد می‌بینیم، میدیدیم البته استنبات های عام هم داشتیم و نه که نداشتیم داریم تأکید میکنیم اصل کار همون روشتناسی قبل که برای استنبات های خرد خرد داریم و خیلی جای اتفاهم میریم می‌بینیم، بزرگان استنبات های کلان کردن نه فقه های, متاخر، فقه های قدیم مون تو بریم در بیاریم اینا رو بغل دستم بچیم حتی روش شناسی قدیمم هم خیلی بغل دستم قرار نگرفته تو ادامه اونه اینجا چون که قبلا خیلی کسی دنبال این نبود نظام اقتصادی رو در بیاریم خیلی جا دست ما هم نبود نظام اجرایی جامعه دست اون طبق اختصاات جدید ما باید پاس و خوب باشیم میگن آقا مثلا شهید صد نظام اقتصادی رو عنایت کردن مکتب اقتصادی رو در آوردن چرا چون که دیدن اقتصاد مارکسیستی میخواد جامعه رو به یه سمتی ببره مالکیت عمومی رو بگیره همه رو بده دست دولت در شوروی همین طور شد مالکیت خصوصی رو لغو کردن پول مردم رو گرفتن دادن به حاکمیت اون طرف هم نظام لیبرال در ظاهر میگن آزادی مالکیت ولی مالکیت در عمل آزادی منفیه نه مثبت. همه آزادن برن از این استخر اصل بردارند اما من دو شما قاشوق داریم اونا ها کامیون داره میاید پر میکنه میبره یه اون قاشوق هم ندارن. خب اینجا شعید سعد این روی کرده کلان اسلام چیه؟ مالکیت قبول داره؟ نداره؟ نمیشه اون تک یه نگاه عام به اون مجموعه تک مسئله تک مسئله،, مسئله فقی میکنه خلاف اون نیست البته ممکنه سوالای های جدید یاد بشه بگه آقا این دوتا های با هم تناغذ داره یا نداره ولی یه نگاه عام باید بکنه تا ببینیم مسیر چگونه است هدف چگونه است، اونجاهایی که شما یه هم اضافه کنیم اونجایی که ولی امر اختیار داره دولت اسلامی اختیار داره میگه آقا ولایت داره خب ولایت داره خلا خب این طرفی رو انتخاب کنه یا اون طرفی رو ولایت داره یعنی اختیار داره اما کدام طرف میریم یه استنباطی می همین آقای مهدی نقی یه زمان حرف قشنگی داشت آقا تا تو روزنامه که یادم تا تاکیدش آقا باید مستحبات خب رو هم رو جمع کنیم ببینیم چه مسیری ما رو تشویق میکنه ببره مستعبات من یه مثال دیگه همه زنم تو رساله این نکته جالبه نماز جماعت مستحبه. اما میگه شما نداری کلا نماز جماعت رو رها کنیم پس یه نگاه جزی, جزی یه نگاه کلان اصلا این از اون موارده تو نظام عبادی ببینیم آیا ممکنه شبیه این رو تو قسمت دیگه هم تر کنیم شما تو تعلیم تربیت بچه آیا میشه بگید آه این واجب نیست نماز بخانه کلا بچه رو رها کنید بعد موقع بلوغش دیگه بینست نماز بلد نیست اونس نگرفتون بگید این دختر هنوز بالغ نیستش که کی افته حتما چادر بپوشه کی افته رو مغنه بپوشه خب بعد تعلیم تعلیم یه جور دیگه در میام پس ما برای اون نظر... با... تو رساله که بری میپرسیم میگه آقا واجبه بگید نه ببینید زمان شاه شاه به این سمت رفتش که بره ازدواج با فرد غیر مسلمان بکنه آمدن استفدا کردن از آیت الله بورجردی حالا یا خبر به رسیده بود یا به هر حال حالا هر طریق معنوی بگیم به هر حال ایشان حس ششونشون خلاص گل کرد یا به هر حال به الهام شد ایشان یه جور دیگه پاسخ داد فتوای مثلا انتبه اون فتوای جوزی میخواست بگه ممکنون بگه آقا نه فتوای مشهور هم. مثلا نظر مشهوری این هست این میشه مدیریت باید این نگاه کلان داشته باشه اگر میگفتش آریف هست کن فتوایشون باشه آقا اشکال ندار چی میشد آدیسازی میشد برای چی؟ این که جامعه کلن شیرازش به هم بخوره خب این دیگه نمیشه که ما خلاف حکم شرعیه. مدر... خب در مجموعه شما میخواد جامعه رو مدیریت کنید باید اون نگاه های کلام رو استنباط کنید پس روش چیه؟ از همون روش ها ولی همون روشا رو می‌تونه جای دیگه هم استفاده بکنیم. مثلا اینکه ما گفتم آقا تمسک به منصوصات، خب اینجا هم داریم همون استفاده می‌کنیم اونجا هم تو فقه رایجه دیگه. تمسک به لوازم اونجا هست اینجا هم هست. این روش‌های جزئی متوازیه تطبيقش می‌کنیم. که تو روش شناسی موجوددم این خل رو داریم لضایی که سی ده سال دست درست خارج ممکنه بده اگر اون استاد دست شاگرد و اذیت روش شناسی نگیره یاد نده فقط بیان خودش حل و ئله کنه بره یا بعد اون فرد نگاه انتظایی داشته باشه روش ها رو من این بحثی بحثات داشتم این پسر کوچیکمون ای استاد معین جناب استاد رشید هستیم در بحث فقه و سیاست در محثر ما همین هم امروز ظالم خب کار استاد ما این اینه که فرایند استنباط و روش استنباطی با سر کوچفان آم اگه شما خودت مشتهده که داره اینطور بگیم خب ببینید یه موقع مثل راننده آموزش رانندگی، این مده خود رانندگی خودش ممکن خیلی بد باشه ولی یه فوتوفند شناسی رو ممکنه یاد بگیره به این آقا یاد بده اینجا هم ما اصلا خودمون باید بریم سراغی ها یه قدم ما الان جلو فرض گرفتیم اون روش شناسی کار شده اساتید دارم درس میدن که این کارم نمیکنن تدریس مستقل جدید کمی داره را میافته پژوهش های مستقل ولی اگر بخوایم این استنباط روشو رو بزنیم این از یه جد افتوان جلوتره یه مقداری 600 که کسی دنبال روش استفاده تو اقتصاد و نام هم آمد نظریه نظریه اقتصادی رو ارائه میده از منظر خودش میگه مکتب اقتصادی اسلام این گونه نظری خودش رو مکتب اختص... در مورد مکتب اقتصادی ارائه میده و بعد بحث روشی هم داره حالا ما بعد این رو بگیریم دنبال کنیم ارتقا بدیم تعمل کنیم خب البته اینجا ما الان خیلی وارد روش جزئی نشدیم ولی میخوام ارز کنیم که این یک ضرورته برای همه من و شما در سطح مطالعات و تعمل و پژوهش ها و قدم به قدم ارتقا بدیم شما علاقه دارید برید نظام حقوقی رو کار کنید خیلی خوب. خوب این نظام های مختلف نظام آقا مدیریت محیده زیست یه موقع میرید از فقی یه سوال کوچیک میپرستید آقا من یه درخت رو قطع کنم اشکال دارید بگنم برو به میگن ضرورت ها ولی شما یه موقع میاد یه نگاه عام رو میارید میگید که خب جزی جزئی نگاه نکنه اینه اون نماز جماعته شما باید برید به سرسبزی جامعه بپردازید اون اول فقط اولی می فقط میگه که آقا مستحب است جایز است جایز نیست معمولا سؤالا همه جا میرن که می آقا جایزه اینه میگه جایزه اما با نگاه مدیریتی آیا نباید استنباد کنیم البته تو نگاه مدیریتی اختیار بهبللی ا و دولت و این هم سر جای خودش میدیم چرا؟ چونکه اونجا کشف کردیم ما نظام سیاسی بر نظام های دیگه مقدم ولایت در واقع این نظام سیاسی مقدم بر نظام های دیگه است چرا چون میخواد مدیریت هم بکنه طولانی شد ببرید. اگر بزرگواران اون هم اگه میخواد برسید حالا به موقع بکنید دوستان در را نماز میخوام بند هم مذیت نکنین نیستان در خدمت. اگر اگه فرماشتید بود آقا خواب رفتن، نیست که نه درست چاخ سلامتی می ولی دوستان سر حالتر بودن یا شما خیلی سر ماندید؟ مندید بین اینه که اونها گرفتند اون نکته رو عرض کنم بحث تضاهم که گفتم می‌خواستم جملهم اضافه کنم تضاهم در عالم مدیریت خیلی بشتره گفتم بیشتر مرجع تقدیم کردیم می‌خواستم بگیم اگه بخواد مدیر بشید تضاهم اجتماعی سیاسی خیلی زیاده اینا هم استنباد میخواب و تطویق میخواب الحمدلالله رب بالعالم صلوالله علی و سید بیماری